إننا نشهد الله في هذه شريك له. هذا هو شرنا اليوم. أعلم أنه الأستار الحمد لله لا يدل على خسارة المعاملة من جارك ومن جارك لا ملاذ متين فرمت المعاملة وحسادها. و شرح اصلا عن نقصتی ها در نیم و لا ملازم و یعنی به خرمتی ما آمده الله کنگاه یا با و از و تعرضه به تخصیل للمسجحی طبعاً ما و احاد از فی مقدمات مقدمات و مکرد ما هم سنه عبارتی که تو مقدمه ها رو دا افتا و همول همول همبتاک همبتاک همبتاک همبتاک همبتاک همبتاک همبتاک حدوم میشن علیه کب نماکان دست امور قبل از گلود به نتیجه و حاقی به همبتا امم شرفناها و ببیان نباید شیعه الله عبارتی علا حدت کلماتی لستار در حیمون الله به ما هم حقیق خصوصا حتما در مثالی تفایی رو بستان این نایی هر که ارسان ندر می کنند در متعلقن به و به و تصویب به منها از به طولها و تصویبها تبریدن حرار به اتباط از محور پسولن که معاملات لا توجه و او حسر المعنى المصالح، الموجود المحبوب ما جایه سببا ما هم در مجوله الوجود من عدم العدم و هدم العدم و من حدم العدم و ان یقم ان یقیم ان و لا بابه به هم شراعت و معاملات که قدید الاسواق یا اولاد آفرده عبادات المعاملات، این ها فرده ما هم که از سببیه و و المثبتی هست به همه الموجوده که موارد لا یخطا به الحساد اصلا نایی ساناش تبدیی هست سبب نقید یعنی نقید المثبت با قبید خلاصت و شد ما افراده رحمه الله بیانه في غن عبد المقدمات یعنی به عبارت المطلب الاساسی عنده عدم وجود الواقعیت و نار عوض العامل و انما خوه انا اذکر المقدمات یعنی الامور جاید اقرار هنا با عنوان الامر الوستانی حتی یک شرده کن المراجعه اما اختصال دیمونی اما اکیتون هنال کتاب و المراجعه لهم حتی بقیه کلاف کار اما بیان الامر الامر به هرکتر شعبیه الامر اما امور و نعتباریه الان امر شرعه و جعبه خلاص از عملکار و مرونه کاری است که داره واقعی داره. امروز باید هم بگیم. الله ان مثل عقلی ناخودآگاه نمیشه. نامی که نامی که نامی که نامی که نامی که نامی که نامی که نامی که بین از زاجه و المنزجه در و از مستعب رحمه الله زمی من حادل مخدمان لبخورمه و الزرچ و ماشاوه داری یعطب نه نه خوبه اقوامتون ان ابراد اعتبار که مخابل هم یعطب رحمه الله ان من باب الناهی یه اعتبار نیست. شیء اعتبار او في اخرون نیست يه برز. هشیء لذی اعتبار في اخرون نیست محرومیت المثل. يار المثل شد يعني في اعتبار او نواقعه، نواقعه یعنی اعتبار فی في نفسی فی اخوان نفسی ان المکللسه محرومه من شرب الخام یا المحرومیه من شرب الخام فلیسه هناش الا اعتبار المحرومیه مراد رو رحمه الله فحریکتون است اعتبار محرومیه لیسه هسته داری محرومه و اما انه حرامه او زجره او نسبتون زرزیه او رد اوم، او ماشاده داره، فها دا کل رو امران از اون لما یدرد حالق من اراغ المحرومیه تنسه در حالق عنوانیه او ماره خرمه، نسبت زرزیه او ماشاده هزاره اختار الگستاق اونا بعد ذهن اصولا فی بابل امر فی بابل امر یعتقد ان الامر لیسه للخلق یعتقد ان الامر لیسه للوجود یعتقد های ان عبارة عن ابراز اعتبار نفسانی ما آدال اعتبار ها به تکلیف آدال امر که رحمت المخلصات معنام یون تزعومن انه هو آجده یون تزعومن اقلق به اولاده یعنی اخرى الامر یحکن مادام جهدت مولا که علی که انتهتیه بیجید فلزا یا فکر را از الوجود یستخل و لا من النحن من باب النوازی به سئل در اعتبار اکثر من در اعتبار دارد شد هم اعتبار سب الارتبار خارجن الخارج یبرزهو فی الخارج ها اعتبار به اصطلاح هو عزیزت و حید رسول نهر ها در الامر سالی لفاقاً لمصطلح يعني هو هذا المراد ملعبه سابقاً نفي الواقعية وليس هناك هم الواقعية حسب المصطلح الذي صادقاً شرحنا لأننا قلنا أننا للمصطلحات مختلفة فيها هنا مصطلح فالصطلح هو المحقق الرائم قدرت الله نفسه وهو أجواء التقاليد موضوع ومتعلق هم هكذا عندنا این موضوع ما روخه الوجود مفروبه یعنی در بارت الموضوع لا به تحت این موضوع اول متعلم به عکسی هو نویت تحت دارت خسار خسار بخانه تحت دارت خلقی اصطلاحی متعلم و ماکان فوق دارت خلق حالا موضوع مثل <متحدث> الله على ناطف جلدیت من استطفاقه علیه سمیره من استطفاقه علیه سمیره و لذا استطفاقه علیه تحسیل موشد الرفت حقیق اصطراب به دلو کشم الرفت موضوع و لذا لیت قلب الرفت به اصطراب واجباً از به رفت به یه شبا علیه سرح سرح فالوست، الاسططاع، این حاضر امور، الان حاضر امور کلها موضوعان سیر اصطراحه در محبت آماتار فعنیم یعنی وجود فرخارج خارج بکن بکن اونو فعنیم لگاهو به خلاف المتعلم اما المتعلم، لا المتعلم یک سهد داره رو فرخ و هوا یه دقیق اراده کنه لله علی ناطحی من استطاعه لیه و استطاع موضوع و هم وجود الحج حاضر متعلمان نفس رها الحج اتیان اعمال دنار علامت رکم اتیان اعمال الحج حاضر متعلم المتعلم یه تحت دائره الموضوع که دائره و المتعلق تحت داره بسن. و این چه تسته الموضوع مفروغ الوجود و المتعلق اقصد مطلوب الوجود الموضوع مطلوبان مثلا حاضر مطلوبه الموضوع مطلوب الوجود و المتعلق یکونو مطلوب خب حاضر ذکر مراد الاستاد من ذکرها در مصدر همونها رحمه الله بیان انها در موضوع المتعلم لا رح تلروب الواقع مثلا عن موضوع نهل استطاعه لیسه علا تند ووجوب الحج هو هدث رو ها اساسی بیان ما در این اعتباری مقدمه هل امر ثالث قال اما الموضوع یعنی اما المتعلق خلایم برشت في عدم دخلیه في الحكم المتعلق عبارتون عن مسئله به اطلاع اثر بالحجنی اتیان،, اتیان لعمال الحكم الشرعی ولا يؤثر ابدا، عبده لا في مرحلة تشریف ولی اعتبار ولا في مرحلة فعلیه ولی انتصال لما المصطلح هذا خلاف القاعدة قرأتها من العبارة متعارض يعني كلمة الفئلية في اصطلاحات الوصولية لها عدة معاني استخدمها لأستاذ هنا من حدث الامتصال هذا خلاف المتعارض لأن المعروف أن الموضوع إذا صار فعلياً أن الحكم سير فئلياً أما إذا حتى للانتخال الفكم يسقط وأن الحكم سير فئلياً هذا مصطلح أنا لا ناقش مع الأسرار لأن الأستاذ قال الفعلية والامتحان لأن ليس دقيقا على الإصلاح ليس دقيقا الفعلية لها أثر هذا المعنى يعني كل مراد فعلية بس هو امتحان فقط هو ليس اختيار الإصلاح ليش لأن الفعلية الشيء موجودة حكوه هو هذا مراد فعلية و اداثر الله امتصر الخوف و اعطاب الخوف یخفر او فعلی ما بعد یهود زنید موهنه هم ما بعد یهود زنید بلی یقول بگالی کل امن فعلیت الاحکام این موضوعاتها و مدارها وجودا و ولا تتوقف على متعلقات ها. متعلقاتها چیف ان فعلیت المتعلق توجب سقوطها خارج لعله مراده هنا فئليه المتعلّم، مو فئليه الكفو. لعله مراد لعله الكفو. لا إيه لا انسجام بينهما. هو الله آخر على العبارة. الآن تبين لا يوجد فيها هذا الإشكال. فمراده في مرحلة الفئليه، الفئليه المتعلّم. لكن أيضا مرحلة الانسجام. هذا هذا هذا. فهذا مصطلح خاص. مصطلحه هنا الفئليه الانسجام. الفئليه غير الانسجام. علل ارتباطات فاولا يعلم بان المتعلق لا بد هو لله ذات ديوري في تاثير الواقع بين الحق وبين المتعلق مثلا المتعلق عبارة عن اعمال خارج الحق هو الوجود هذه الاعمال لا تاثير له في الوجود لا في مقام التشريع ولا في مقام الانتصار اما عدم دخلیفی مرحل تشریع فواده هم یعنی به اصطلاح لا یارا دخلیلن لان عمل تشریع فعل اختیاری یا در تشریع و تشریع و و من الافعال اختیاریه فه به ما انه ها فعل اختیاری فی اتراب تفاعلی اختیاری دارت یعنی جعل وجود او اتصال اعمال لا اداشه این آخر ولی بما انه لعب یستحیق من المتکلیم من الحکیم لا اشکال که انه جعل الوجوب لا بود درد جعل الوجوب منخجبن مع اعمال الحج یعنی اعمال الحجی نفسها لها خصیصتها لها ملاقاتها لها مخانه لها اصلاح خاصه توجه بوجه الوجود ولیکن لا به محناهن نبود به اصطلاح یرک الى المودا حتی حاضر الدبائی و حتی حاضر مسارح ناغع راجع سان و موجود نفس المتعلم مو الى حکم المودا نظرش تمامش این نفتر است که ما خود اینجا واقعیتی مطلح نیز اعتبارش دارست این بوده گفته باشه چرا خب داره. این تأثیر عمال... سربی... سربیت داره یا تحصیل دارید؟ معلول تمام بیاد تا ما خود متعلق چون دارای مساره خود که از الال و شرایط جهل چون ملاکات؟ آه، نه یعنی اون ملاقات منشه شده که این آقا جعر این داریه، نیست صحیح صحیح رو اندر متعلق <متحدث> سه ها, ها دعت الى جعل وجود او فوقت کلی کل مصالح که عملها که فیزیار کلی خیلوزا دیار کنیم آنوزاد نمون سهبتاً حجد کنو باشد ارمان بین آمان ولو کلاه ما من الشعار الدینیه لیکن فی الحج توجد خصوصیتون حالی خصوصیه حال الملاد و جعل الوجود الحج هو حضرت الاستاد داینا نهو ناشید واحد یورید و عنیانفی از تأثیر بین المتعلق و جعل چه کمکی نگذیه این که یه شرط نیست، سبب نیست تحضور صرف این که میگه معاملات هست، واقعا نیست اونجا مثلا اونجا شرط موضوع وارد استثاعتی، شرط نیست در نوعه سبب نیست، سببیت و شرطیت نیست اولین که به ما الجن فعل اختیاری و لجوء لایق اثر به عامل خارجی ها در ثانیا وجود مصالح و مفاصل در امور راجع تا اعلان متعلم لاردجن لا به وجود هذه المصالح المتعلم من دعای الجن و من اسباب الجن به تعبیر دیگر يكون علی وجود داخل مرجع للجن بله خوب، و من الوابع هم ندهد فلت المصالحی علا نحر جایی فی المدعو لا علا نحر دهد الهلت من قدیل جایی لا من قدیل الهلت و خروج حکم الشرعی عن قومی که به قانون تناس و وستنخیه بین یعنی خوب من اول نکیه خلاصه من تکمیلی بين بین بين رجع، بین مقام رجع، بین موضوع رجع. این موضوع رجع. این موضوع رجع. این موضوع رجع. این موضوع رجع. این موضوع رجع. این موضوع رجع. بل نعم جعل و حیثو کان غالباً علا نحو قضای حقیقیه فبه نبیعت الحال يكون مجبولاً دل موضوع محفوظ الوجود خارجه طبعاً اله استاد رحمه الله وفاقاً للمحقق النائمی شرح نصابه نمیران خان یعنیم به مطلقه المطلق الهزر امن القضای شعریه به محظر القضای حقیقی خفل القوائل حقیقی یهی القوائل نسی یوکم یوکم یوکم حکم علی طبیعه از الموضوع من دون و این وجودی خارجه مثل انبول الانسان حاکمون به خبره حدا مراد من قویل حقیقی فا اولا یعنی حقیق من صلاح از صلاح و واجبتون علی حقی واجبون حدا من قویل قویل حقیقی حدا یه نقطه اونی در قصد رحمه الله و فاقه لقصد رحمه الله نقطه دو تانی یقین نقطه این مقام سر رو بین القبای الحمدیه و شمدیه فا از اختار جمع به حتی از اینجودین حالیه از در قبای الحمدیه مرجع های لا قبای در شمدیه وزای انسان الله و قاتبون یعنی تضا وجده فر خارج شیرون سال غره انسان پر از فا مرجع القبای الحمدیه لا قبای شمدیه فبناهن علی ایمان به قول هو عربانان حرم عليهم حرم عليهم الميت. ما نه ما حرم عليهم الميت. یعنی الميت حرام. ما نه ما الميت حرام. یعنی اگر وجدت القارشی اصرع عليه حنر و ميت حرام. فراگواري شرعيه ترجي إلى غباري حجديه همينه. و غباري حجديه ترجي إلى غباري شخصي. حنري. إلى الحمدی شخصي. حنري فإذا فا قوله بود الموضوع یکون مقدمه حالا محطاره بود المحطر ناین قدس الله عنه بعض عبد المنطقین لا اختصاص به رسول بحثت منطقین بیمحلی تو که قبار من بین القبیه در حرقیه و شرقیه خبتر اول نداریم تو فهم خودم خودم قائلش گیردم برگرده به شرقیه شرقه اثبات شعری، ثبوت شعری خرید ثبوت در این که سفر رو بگذارم علا یه ها بزرد شعبت که نبرون دل, دل رحمه الله فی اندال قوای الحمدیه مرجعها الى قوای شرپیه فی حادل قوایه شرپیه یکون الموضوع به منظرت قبیه تام، یعنی لیت خانه نابسه یعنی اذا صدر علا شیعه اذا وجد شیعه صدر علیه نیتر مفاسقان هستان اذا وجدت خارج صدر علیه نهو میتتون فهی حرام علیکم مرجع و و لذا استاد یختار حاضره نه و حیثو کان غالبا علا حضایب حقیقیه فرسد به طبیعت خان یکونو مجعولت للموضوع الوجود خارجن بود و, و فی ما بعدم فرحه داده فلمران المفروض الوجود خارجن یعنی ارجاع حقیقت الحمدی الى حقیقت شمدیه فی ادارتان الامر تداره فلا محالت حالا خیلیت موضوعی و لا لدم خورد ملیت موضوع و لا اجزاده که اطلاقا علیه سبب و شرط تارتن او خیمال اندل استطاع و سفر به قدر مصاف... نصافه شرطون و الگلوخ شرطون لستکلیم و البيعون سببون لبنکیه به ها جزان محلوها در کلام در استاد به طولی و تفسیری حاضر یک ما هم نهو عنده لا شرطیه شرط و, شرط و لا سنده افلا همه از یکی دید یایی شرطیه از مشهور انده ها فل اقالات یا به شرط معاملات یا عبران احنا لا شرط ها و اند لا و الله به قانون تسامخ مما بیدن الوث و المعلوم لکانن تلکه الاحکام الامور به قانون تسامخ بیدواب و یعنی نقطه نقطه الاللیه المعلوم خارجیه و ثانیه خرجت انکونه ها به اصطلاح افعالا اختیاریتن به ما ها المناسب برکومی فیران اختیاری هست انلا یکونه ها فشیدی هست به ها که اختیاری موضوع هست محبوبی موضوعی اون می این این که میگه به یعنی وی علت جهنه در این بوده یعنی نیست که اگر با این طرف شد یا اگر مسبب واطل شد سبر شرط هم نیست. شرط استلاحی نیست مالاون تأثیران فیفاریت الفائل و حاملیت القاضی نیست شما نمی دینه این شرط را از شرط یعنی اوخره مفقود از وجود این ما شد. هر چی مفقود از وجود باشه شد. هر چی مفقود از وجود باشه متقاضی متعب... باشه هم برم هم با همون بیز هم بیان نمی‌دونه از جایی ایشون هم, هم, هم نکته اینه که البته ناریست کرد. قبول کردی شما قبول نداری یک شو از مرغ ناریشو هر شرطی کنه از مفروض باشه این میشه موجود، مفروض باشه میشه موضوع, باشه، میشه موضوع. این همش برمونه این همش بگیری چون تأثیر نداره نه موضوع نه موضوع نه موضوع تأثیر تشمیلی رو حب ندارن این چون هرمش خلافه یه هرمشون اینه برده هیچی تأثیر ندارن <تصح>. فلضا نمیتون بینیم این سبب این موضوع که این چیزی وجود نداره و نقصه هم حالا غیر از این که البته این مسئله هست که من کردم و رضا الان گفتند که بزیار و از شده چراحه گفتند که به که یه بله خبید؟ حقیقتی برده اما هم هم. عملیه احتياج. احتياج، ده ده بنام. بنام این مراد هم خودش یه سسونه جدایی داره چون تو کلیعت مفروض بنام وجود کانه این مراد برم حملیه هملیه نقضی برسته بنا خارج مثلا اداجه على شارع وجود على حجل المنصفتی على نحض حضیه الحضیقیه انتظر عنوان شرطیه در استعماله یورجو قبیه الحضیقیه همگی مرد من حضیق هو الى القبیه شرطیه هذا به نسبت الى الاحکام التکلیفی و اما به نسبت الى الاحکام الوضعیه قال رحمه الله این احکام لاییه علیه قسمین قسم صالحة وقسم غير صالحة ثم صالح لجع کلمیتیه و قسم غیر صالح لجع کالشاییه جزیی. سپس گفت ما قسم غیر صالح لجع کار خارج از محل کلام و منعنه سی اقل قبول در ایقاعات اسباب المثلبات حاطمان جدن خنا که انکر شربیه خنا میان که اثبتیه لا اثاظ له ولا واقع موضوعی له اخلا کما انهو نذکر انهو لا اثبت لما ذکره شیخ من قصد منعنه نسبت نسبت ها هلیه ها نسبت المعاملات للاسواق نسبت العالت الى دلعالیت لا تباییتون ولا آلیتون و هم شرق نایمان یعنی ما دلما تلعب قدر و سر ترسیگاری لا نومن بها به کلام من انل الانشاء اگارتون المعنى به لفظ اگار نوم لند ایجاد تکیمی غیر ایجاد به اتواریت حالان به اتوار فا تقدم هم شرحنا انهو لبی اومد فا وضوح اناللغ سببا الاعتباری ولا آلت انلغ شیف اعتباری الامر و غیر مره واقع موضوعی الان ما اعتبار الاعتبار او واقع الهم اعتبار و فی افق اکثر من لا بهدن ولا یک را و علا ای شیخ آخر غیر اگو نه ابراز رو فلخالب یهدازی را مبرزین علا اگه کلامی دارند من و عددت ان الامر عبارتون ان ابراز نه ان لیت به معنی الله عن خورم او لا هم من معتبر نفسی محرومی تر مکلن تو و اعتبار اعتبار محرومی به خب بیلده، به ف... نکته خمه و من ناحیت خفرات رحمان الله یا حلل المعاملات که ما نحن مناسبت به تحلیل المعاملات خلاصتون تحلیل المعاملات انده بود هم در المعامل از به عمل او به ثلاثم ساعته عمل عملون دین بین, بین شخصی، عملون عمل و عمل اون دشتار مثلا اشکرسان یا حرومان با عاد اون بهت کل کتاب به یش علیت استاد که از بال می‌خوییم. حالا لا اسبابی لواحه‌ایه. اهل آگلاییم نه هر یک اسباب. از آن هنر اسبابی امر واقعی نه اهل آگلاییم. اشکاره یکی از هر یک اسباب. اهل آگلایی نه یکی عرب ما معاملات تحیل امیان. فی معاملات هریم امور خلاق موجود. طبعا به نسبت اشکال موندود امران اعتبار و ابرازون سمه قال فبری فالمعاملات اتامن للمرشت به در الامره اعنی الامر الارتباری نفسانی ابراز رو خارج به مبرز ما مثلا عنوان البیغل اتیار و سول و نکار لایست و مجرد الامر الارتباری نفسانی بدون ابراز روی خارج. سلوه اعتبره شخصون فی افقه نفسی ملکیه دارهی به زید مندون ان یهر زبون فی الخارج زن یستق علی انهو باه دارهو او وحب فرسن کما لایستق فرط العنابی علی خارجی مندون اعتبار نفسانی کما دارم مقام سعزال و سی اقلی اون فی مقام فدید کم نهان اصول به اعتدائی به نهان اصول به معنا فسا به ها دیگی يعني هذه كل المقدمات التي ذكرها غنم إن شاء الله عن نتيجة النهائية التي عراده رحمه الله وصلى الله على محمد آله القرآن مرادنا الحمدية وعلى الغيب شكرا لكم شكرا لكم الجان سترزق في بحث الصراعه قلنا لها هي خرز خرز دينام ادمي ماشي كده يعني كده